مرسی، نیکوارم، هرمون خب. شد نه خودش خدا دار سپر خود چی گفتی؟ خیلی خوب آجنان شدیم، شدیم ماهی سراز مالی، یه اول سیزهر دام افته افته بعد برورش میکردی؟ برورش اینا درست ها درس به اینا میگن که در تمن به درست میخوره ما ترازنامه رو گفتیم تو یه سمت راست داشت، یه سمت چهب. سمت راستش چی بود؟ دارایی. دارایی. سمت چهب؟ بعد گفتیم که فرد دارایی با سرمایه دا سلمز چیه؟ سرمایه میشه خالص دارایی همون که پیدهگی همون کم کنید. دارایی هم که اون چیزایی که خوبی منداری بدهیاتون رو از دارایاتون کم کنیم میشه سرمزن چون که بدهی سخت باشه میتونه دارایی و سرمایه با هم برابر و گفتیم که هرچی بدهی کمتر باشه به عنوان یه قاعده کلی بهتره چرا؟ همه ب... خب، چرا بهتره؟ بردنش. شب رو هم چرا؟ چون بدهی نداریش چون بدهی بهره هم دوارا. داره یه نکته مانه می‌مونه بود که وام بگیریم یا نگیریم وام بگیریم جوابشو تو سه منحله گفتیم بیتن اول از همه چک کنیم که چی؟ اون که بامه, <تصفيق> بامه به حضیره تبدیل نه شه به دارایی مولد تبدیل بشه وامی که گرفتیم پس دوباره نرخه بازده هه. اون دارایی مولده بیشتر هر نهت بانکی باشد این ستا دیگه جواب شما رو تو هر نوع تصمیمی نطبت به بانگیری میدهید زندتون یک سیستماتیک فکر بیمارید بعد, بعد آمدیم صورت سود و زیان رو گفتیم که شامل درآمد ها بود و حزینه <تصفح> <تصفح> که اگه درآمدها بیشتر باشه سود و اگه هزینه‌ها بیشتر باشه <تصفح> بعد چند تون نقطه راجع به گفتیم که خیلی مهم یکیش این بود که درامده تون وابسته به یک منبع نباشه از مختلف درآمد ایجاد کنید و یکی دیگهش این بود که بهترین درامده اونایی هست که خودمون آفرین نیاز مستش. به حضور رو بشه ازی که بتونید که رو با یه تا راحتی تجربه رو دو دفعه ضرر کنی و اینا همه پشتش هست، ریسک پذیری هست تا بایدون یک بولو بعض بعد معدوم شروع هزنه ها بایدون، هزنه ها کلی بعد قلقن هزنه چی یعنی آدم رو نمیذاره نمیزه آدم ش. آدم تو توی چرخه نگر میدارن یعنی چی داری مصرف چرخه یه یه بازی اومده راهای برای به من نشون میذار جالب بود همین حرفایی که می‌زنی بازیشم بازیش هم اومده بیرون بازی جالبی یعنی خواستین بخرینش گردش پول اسمش بایه از روپولی اینا روپولی روپولی خونه میخریدیم و اوهایی سلوستتون دیشترین باز این آلو بازی خیلی حرف بکرد از اینا بازی نیستش که که کتاب کرده بازی رابرت کیوساکی دیگه هر بکرد ایرانی شده تورید کرده ایرانی شده شد. شما واستان یه چرخه داره اینطوری که تو این چرخه همش میچرخی اینا همه درامداتو از اینا هاد. یه جای ممکنه یه فرصتی برایت گیر بیاد که بپرید توی یه چرخه دیگه که این چرخه سرمایه گذاری سود سوده و بعد ببینید این کارو میکنی یا نه و شخصیت مختلف تو این بازیه هستن. پرستار، مهندس، استاد دانشگاه، مدیر بازرگانی یه شرکت که حالا هر کدوم به تو افتاد با اون نخشش کجا میری و آخر سروزی ها این داره و که ما هزینه ها باعث میشه که ما تو این لوپه بمونیم های و بگیم هزینه کنیم و بگیم هزینه کنیم نتونیم سرمه این بزاری کنیم بعضی خوراکی خورایی با بچه ها خوازی کنیم دیگه میفهمم که چی به چیه بچه ها رو درست آموزش بدینی فوقلاده میشه. باز یه گرده باز من دوباره میگیرم اصلا نشوشتونم بیاری منظورش اینه که حواستون باشه از این چرخه، بپرید بیرون بعد هزینه ها چون زیاد میشه دائما آدم ها بیشتر کار کنن تا همون رفاق و داشته باشه استهلاک که آدما بیشتر میشه ساعت بیشتری سر کار بگونن اضافه کاری کنن دو جا کار کنن استرس هناش ولی وقتی از چرد خیلی بیرون بهتونی سر میگذاری یه خیلی صدوق زندگی میکنیم هزینه ها رو گفتیم که این نقطه های مهم میداش. گفتیم بستن از خرید های حیجانی به به های, های هایپر اصلا توصیه نیمیز چون اونجا چیزهایی رو میبینی که نیاز نداری نمیزم. ولی فکر میکن نیاز داری نمیزم. ولی خریدم جزد های زندگیه ولی تا اون چهت خط را نیفتاده نمیزم. چند بکنی؟ بهتره یا گفتیم که هزنه های رو تورد وردیم کنیم و هزنه ضروری، هزنه که ضروری رو اونای کنترلی داشته باشی نکته مهمی مهم این بود که ما درامده رو روش تمرکز کنیم یا هزینه ها رو تمرکز کنیم باید انرژیمون ذهن رو ذهنمون رو دارین رو افزایش. چون که اینا میتونن تا بینهایت هم بالا برن هزینه ها دیگه نهایت صرف میشن باید هزینه کم کردن هم طبعات داره زیاد کلا ما میگیم به خزینه‌دار گیر <تصفيق> ندیم ولی اون رعایت کنیم واقعا همین آدم‌های سنتی یا کارمندا همه تمرکزش رو می‌ذارن رو پزارهای شاه منو خزینه‌دار. فایده نداره دیگه مثل در مادر خودم که مثلا کارمن بودن و حقوق ثابت داشتن و همیشه پرست داشتن رو خانواده که ازین‌ها رو کم کردن 30 سالم ازنار کم کردم آخری چی؟ نمیشه. قناعت بزیدی آره بعد قناعت میشه از این رو کم کنی اصلا هر پیشو که تو یه همچین چیزی نگفتم که رابرت کیوساکی انجام میده که میگه آدم ها چهار بروغن چهار ماجیکو؟ زنیا بود. بودی که شما بودی چهار، پنش دن آقایی آقا دورده من رفت من یه بدین که سرش باشه نه سرش 5 بیست آدم رو میکنه چیزه؟ حالا میدیم مشکلی نداره ولی بخواه کار رو نمیم شما خوش میگه که یا نمراه حالا گروه گروه آه یا ایمپلوی هنه ایمپلوی کار یا self ایمپلوی یعنی مثلا پیشبر یا بیزینسمن هم یعنی صاحب بس. کسب و کار سرمایه بود سرمایه خونده بودی؟ اینو خونده یا آین اینوستور یعنی سرمایه خب بعد فمت چپ یا فمت چپ یا پول دار میمیشم کارمند رو خیشفرمان خیشفرمان چی میشه در برمان؟ خیشفرمان مثلا میشه در اندون که برای خودش باهار میکنم یا من که الان مثلا تو این کلاس هم حالا دوزی میدم یک دونه دونم که از همه بدتره دیگه کارمنده در حقیقت کارمندی مثل زندانی بودن. یه ماه میره سر کار از این ساعت تا این ساعت وقتی محیطای کارم های که همه ها میخوان درجه زیراهش رو ببنم جنگ و بحث و اینطوری کمتوری این کار نکرد کار کردم منخصه این تویش نمیدنم حالا این مدلی یه ماه کار یه حقوق های گیر درجه از نمی کنم خیش فرما بعضشون از ما بهتره تو اینطوری دیگه رئیس نداره مثل من خوب میتونه مثلا کلاس رو تعقیق کنه تا بچه ها خوشحال میشن ولی باید باشه تا پول در بره. خب مثل یه مکانیک باید بره سر کار 8 ساعت، 10 ساعت، 11 ساعت بتونه درآمد کسب کنه. واسه همین درآمدش محدوده چون باید خودش باشه. ببینید، اونجا که میگه درآمد خوب که طرف خودش نباشه چون اگه وابسته به خودش باشه خب ساعتهای زندگی این و کاری این محدود دیگه بینهایت که نیست ولی اگه خودش نباشه کارا رو باگذار کنه همینه اینا میتونه با همدیگه پول سازی کنه مثل یه نفر میبونه اصلا یه مغازه لباس فروشیده میگه آقا نمیارم یه در فروشنده رو بردم خوب نفر رو کرد. من همیشه همین یه دونم اغازده رو دارم خودم هم همیشه سوالات سره اینم مشخصا درآمدش چیه؟ محدود کرده دیگه خودش بسته دیگه نفر دیگه تفکرش خیلی بازه اینو دوربین میذارم اینو تو استقامش حساس همینو اینطوری کنتر کن. همه اینا رو باز میکنم خودم هم تا زور میخوام یا مسافرات هم, اینا هم همه همینطوری دارن میفروشن اون در سنتی ه خیشورما از کارمند خیلی بهتره ولی درآمدش محدود به حضور فیزیکی خودشه اونطوری پولدار که پول پول بیاره نیست ولی زندگیش از کارمنده خیلی بهتره این طرفیا پول دارن این طرفیا پول دارن اولیش که بیزنس مان یعنی شرکت. دیدیم این شرکت داره دیدی میلیس باستانی مثلا حیدر ماشتی شو به نداره این یعنی همون آدم سنتی هست اینکه من بزرگم. بزرگم. و ریسک نمیکنه. همش می که سرش کلا بزن یعنی از کلاهای کوچیکی که ممکنه سرش بذارن سودای بزرگم از خودش می گیره. این صاحبان کسب و کار هنرشون و پولسازیشون تو ایجاد شبک هست ایجاد شبکه هنر ایناست که موفقشون میکنه و پول بینهایتی میاره شبکه یعنی چی شبکه ای از نیروی انسانی متخصص که برای این کار میکنه بین میگن که ینه که و کار داره اسا نیاز نهتونه دکترای مالی بگیره مثل من دکترای بازرگانی بگیره دکتره صنایع بگیره برای به <تصفح> کف کارخونه و اینا بود. این فقط باید انقدر روابطتونش قوی باشه ارتباطاتش قوی باشه مدیریتش قوی باشه که بهترین اینا رو برای خودش استخدام کنه ایجاد شبکه یعنی پیدا کردن بهترین نیروی انسانی و تیم کردن اینا که با همگی برای تو کار کنند مثلا بهترین هوغا رو پیدا این وابسته به ایجاد شبکه است. جما نیشیرنی فروشی تا بودی این جایی گفتی برای خیلی سختی و ذهنت خیلی بازش آموزش زیادی ببینی و بریجور رو ریز کنی شبکه رو باز کنی، طول می کنی؟ شبه دو تو بزنی، شبه سه تو بزنی استاد گفتی نیاد این نیستش که بره مثلا دکترا مثلا یه رشته ای رو بگیره مثلا مثلا مالی خودش بعد هندل کنه چه جوری کدوم معنا مثلا خود بدونه مثلا شما داری داری داری داری. داری که الان ام بی ولی دیگه تا حس حسابداری که که بخاطر پنج سال بخونه نیازی نیست یه حسابدار میاره که صادق کار درست با تجربه‌تون برش کار کنه یا شما ممکنه تو شرکت تو دعوای حقوقی براتون زیاد پیش بیاد شرکت که فروش دستی دارن بایدشن هم باید بردن اصلا چهار سال بشته حقوق بازونه بهترینشون میتونه استخدام کنه فقط با اینا کار کنه این آدمی میخواد که روابطومیش قبیه کلا بیزنس یعنی روابطومی دیگه ارتباط من یه شبکه نیاز دارم برای بزرگ میتونه یه هموشی رفروشی تن هم هم شکلی باشه هم می چند. این برای این که دیگه پول رو پول بیاد الان تو بازار یا بیا بشن و که درست بناید این چیزایی هایتون هست و گرفتنشون بستنشون داریم یه شبکه این گلد کویس گلد کویس این ها چیزا تبه همین بیفروختن بروش واقعیش هم ما داشتین همین بالای ستخندان یه بوده الان خانمتو بتر دارم اوریفلیم هر کیو می می رو می‌دیدی محصولات هوریفلوی نفسش بود می‌فروسن اینا تو سود شریع کرده بود بعد الان شده داره؟ لرسیان آره الان دی بعد دیدن این‌ها زیاده من دو نلکی گیردن که مرنب چی می‌فروشه ولی این محصولاتش مشخص بود همه آدم‌ها رو که هر دو شد اینا خودشون هر پون دوره یه مجموعه دارن یه شباکی بزرگ تو بازار یاویش درست کرد و همینطوری بروش رفوهر که میرد به امونیم مثلا یکی میوان آقایان رو میفرمی کردیم یکی میگه با من خودم کار رو روی فیلی تو بیا از من بگرم تن پیش خیلی مد بود که میردیم تو کلاس میدیم دانشجو ها همه محصولات رو بود کارهای شباکی رو تو ایران نمیذارن زیاد حالا منظورم کنه. از شبکه این نیست که همه این کارو کنن م. همون نیروه انسانی که داری و عالی انتخابشون کردی و صادقا اینا برات کار بکنن میشه شبکه اون بازاریابی شبکه هم یه مدل شبکه هست اینا باید خودشون پلناش فرق داره با هم دیگه یعنی هم که بخواد یه شبکه ایجاد کنه بر بیزنسش خود همون یه علمه دیگه بل. که بخواد اون پلن رو بنویسه خوندیم بازاریابی یا هم نرسیدیم؟ نرد شدیم خوندیم با که خونیم؟ ماها خویه و قبول بله این درقیل تو نمیشناسم پرسیدم با هم یا نم نه که شدیم چی هست؟ نشیم ما این می‌ها اینوستورن یعنی چی؟ سرمه‌گذاره این ها کار کردن مهند کسب و کار و کارگر و خرید و فروش و تولید و این‌ها رو نه نه داره این رو دون‌های موقعیت‌های سرمه‌گذاره می‌گردن مثلا کی داره؟ مثلا یه برش می‌سازه؟ اونا می‌شتاستن بهش اعتماد دارن آقا سی درصد آوردن ما می‌گارید سهام کدوم شریکت خوبه ما می‌گارید کدوم منطقه برای سرمایه گذاری خوبه چهار سال دیگه جواب میده این سهم ماست یعنی خودشون اهل کار نیستن ولی خوب بلدن که کجاها سرمایه گذاری کنن میتونه سرمایه گذاری طلا تلا، دلار، مسکن، سهام و این مدل سرمایه باشه ها باشه مثل؟ زن باشه شامدیز شامدیز کی؟ گند داستان چه میگه؟ آره چه هش که؟ چه میشود؟ آره اش هردو مثل اینجا مثالیم مثل وارن باف هست این اصلا؟ این یه آقاییه یه مایل آقای وارن باف که چه اصلا بیستافر اوله نه نه امپریکاییه بیستافر اول سر وادمان دوی دویاست و سر واتش از خیلی زروش سهامه. این بیزینس که مثلا خرید و فروش و کارگر و تولیدی نیست سهام ها رو انتخاب میکنه که بهتره که بفروشه و تو 40 سال اومده جزه لیست 20 نفر که صاحبای کسب و کار بالا مثال داره ببین ما متاسفانه تو ایران این لیست منتشه نمیشه ما نمیدونیم تو ایران نفر اول ثروتمند کیه برای اینکه اطلاعات شفاف نیست اطلاعشون شخفت نیست معلوم نیست ولی تو آمریکا همیشه این لیست صد نفر اولشون مشخص تو لیست صد نفر این نیا شاید مثلا 20 درصدشون تو کار صحام هست یعنی از این تره باید شاید یه چیزی داره ما همیجور دارم بینیمیسنم شرکت های نفتی و گازی مالکین اینا نفت و گاز و فولاد و اینا مثل ایران نیست که نفتش اونمان دولت باشه استخراج کنه بفروشه اونجا نفت شرکت‌های خصوصی استخراج میکنه. یه سری از پولدارا تو این کاران یه سری از پولدارا حالا شاید حدود 20 در ذریعش تو سنت آیتی و مثلا همین مالک شرکت ماکروسافت که رن فوت شد دیگه نه اون اپل اپل آره این آن خیلی کارا خیلی هستیم این خیلی بزن بزن خب الان ما بعد یه تصمیمی رو گیریم با دیگه که حسابداری بریم بریم جلو یا مدیریت مالی بر بریم جدو اینجا چند جلسه با هم هستید شما بایی شما یه ذره دورت همون با ایبیه دیگه فرم کنه تو جا محسس دیگه یه شمونزد ساعت حسابداری دارن دو شمونزد ساعت مالی شمونتا ساعت حساب داری؟ دوتو ساعت میشه سیو رو سیو دو مال شما شونزده تا حسابداری 16 تا مالی حالا با تصمیم میگیریم که مالی رو بریم یا یا حسابداری من نظرم اینه که حساب داریم میخواین الان یه جلسه کنیم جلو رو جوری میشه حساب داریم وصول حساب داریم بتونه یعنی علی واسه این یه حسابدار بشه مالی رو بریم, مالی رو بریم. مالی من نظرم بهتر خوصد یعنی که هرلند مالی رو بریم جلو یا هرلند حسابداری داریم جلو من یعنی من یک از دو دار دو تشمون سهت هست یک کدومش هرم بند انتخاب کنم حساب داد ما یه حساب داریم مالی چیزای جام میدهم بسیت میتونم آخر سرم زمانتون رو اضافه کنم ولی تو حسابداری مسائل رو میگه که به حسابدار حساب دار میخونم ناره ما خیلی باید موسرکار نمیم ولی باید. باید بدونید کوریلنگ باید مدیر بدونه که حساب چیکار چی کار باید حسابداری بریم؟ نه این روز مالی این روز رو مالی بریم دیکی باید نمیتونم برگردم اول حسابداری چی نشیم یه ای مالی داریم یه حسابداری داریم اصلا <تصفح> تئوری <تصفح> <آزه. تصفح> <مصفح> <تصفح> نشه دیگه بیا زرت سر بر. خیلی حساب کتابی نشه حس من دانش بیمه بقول شما چیزایی که لازمه دیگه به نداره من خیلی جذاب در حساب ولی این درس حسابداری مشکل <تصفح> از <تصفح> اون <تصف درس قصا کله سیوتو صار مگلیم شکولا مالیم یک چهارم شو حساب داره ببین سه چهارم شو مدل نمیشه گوه علی ابرو نه نه حالا حساب حساب حسابداری میگم نه اینکه حساب تو همه شما بیشتر میکرد نه را بیشتر میکرد نکن من چیز امینه همه بعد آخری جلسه دوره تصمیم میگیریم که بقیه کار چیکار کنند. خب ما گفتیم حسابداری یه... این چیه؟ سیستم, اطلاعات. سیستم اطلاعاتیه حالا یعنی چی؟ مم. یعنی اطلاعات میده ما باش تصمیم گیری میکنیم. ساده. یه اطلاعاتی به ما میده که ما باهاش تصمیم گیری میکنیم. مثل همون ترازو نامه. مثل همون سود و زیانه. همونطور که می‌دونید هر سیستمی هم سه بخش اصلی داره ورودی پردازش پردازش و خروجی ورودی تو حساب دارید اسناد و مدارک اسناد و مدارک رویدادهای مالی مالیه چیه؟ اسناد و مدارک مالی میشه ورودی حساب ده. مثل فاکتور خرید مثل لیست حقوق درستان مثل فاکتور فروش مثل رسید انبار مثل حواله انبار این همه میاد تو قسمت حساب داری و پردازش انجام میشه این پردازشی که قاعده به اسم قاعده ی رو و بستانکار اینا حسابدارا یاد میگیرند، بلدن انجام میدن که من این روز شما یاد بده حسابدار با این قاعده همه این اسناد و مدارک رو پردازش میکنند، تحلیل میکنند و آخرش خروجیش میشه چی؟ صورت های مالی که جلسه پیشم گفتم اینو، صورت مالی چهار تا بود ترازنامه سود و زیان بزشت... وجود نه بزشت... و سودوزیان جامعه بزشت... که دو تاشو گفتن هم میتونیم برای شما توضیح بدیم ترازنامه و سودوزیان رو براتون توضیح دادیم ترازنامه و سودوزیان و گفتیم هنر حسابداری اینه که هزاران مثلا ممکنه یه شرکت تو یه روز 100 تا معامله انجام بده تعداد فروشهاش خریداش و تو یه سال ببینید چقدر میشه هزاران رویداد معامله رو تبدیل میکنه به چهار صف صورت های مالی تو ترازنامه خودش یه صفحه است شما میفهمید چیا داره چقدر بدهی داره چقدر سرمایه داره یا صورت سود و زیان میفهمید درآمد شرکت چقدر بوده هزینه هاش جوری بوده سودش چقدره دیگه مشخص شو یه حسابداری کارش اصلا نظمه این رشته کارش نظم و خلاصه کردنه نظم و خلاصه کردنه و حساب رو کلن باید آدم های مرزمی باشه این رشته کارش اینطوریه طوریه آدم های هستن. هم اصلا هم خوب هم این شما هم من به شما بود <تصفيق> حساب داره دو. دو تا شخصیت یا خیلی باحال و باز و لوتیو. این طوری هم یا کلن آدم های و منذبی و اصلا بره تو مخی هم معموله هر به وسط ندارم ندارم اصلا طرف این چهار تا خودکارم داشته باشه تو جیب شکیم یه دقیق خودکار رو تو میدی؟ میگه نه اصلا میگه زامن بامن من میشی؟ یه نه میگه نه او چه کار رو خب حالا ما میخوایم روی سیستم صحبت کنیم از اینجا بیاییم اینجا خب اول از همه اینجا رویداد مالی چیه ورودیه دیگه اول کار رویداد مالیه هر اتفاقی یا هر معاملهی که بعد دارایی ها بدهی ها سرمایه درآمد هزینه تاثیر داشته باشد میشه رویداد مالی هر اتفاقی یا معامله ای که دارایی ها بدهی ها سرمایه درآمد هزینه یا بینشون یای ها اینا که با همش رو هم کنه تاثیر داشته باشه رویداد مالی خب حالا چند تا مثال میزنم شما بگی کدوم یکی رویداد مالی هست کدوم یکی رویداد مالی نیست. نیست مثلا خرید مواد اولیه رویداد مالی است رو چی اثر داره؟ رویداد دارایی‌ها رو می‌بره بالا دیگه یکی از ها موجودی مواد از اون طرف باز پولاد هم اثر داره از نه. هست از نه پولا پول می‌دی دیگه میاد پایین یه دارایی می‌بره بالا یه دارایی دیگهت میاره پایین یه دارایی به اسم مواد میره بالا یه دارایی به اسم پول میاد پایین یعنی کلا رو دارایی‌ها تاثیر داره پس این رویداد مالی هست, هست. هست. یا دریافت وام، بدهیات پولات اضافه شده بدیهیات هم امید. اضافه شود خب استفاده کارگر این خاص خاصش دیگه باید حقوق و اجاره کار نکرده نه فقط پرداخت ب... این رویه مالی نیست, نیست. <متحان> یا بستن قرارداد <متحان> تا اجرا نشه برای شما تعهودی به همراه همی که قرارد و بستی تو حساب داری نداره این کارگر استخدام کردی حساب داری نداره حالا کارگره که یه ماه کار کرد بهش ما خواهی حقودی اون موقع رو اینا اثر داره یا فروش نسیه هسته شوستو؟ چه مزیه؟ آلو چه چه که روی این دارایی بده این اثر دارن میشن چی رویداد مالی میان تو سیستم حسابداری حسابدارا باید این رو سبت کنن اوکی؟ باید میرسیم به چی؟ قاعده بدهکار و بستانکار کل حسابداری تو اینه کل حسابداری آه. قاعده بدهکار به بهستان کار که در حقیقا پرگازشه کاره این قاعده این شکلیه این میگن میگه د debit a 20 قاعده به کارو بسنگه این مال ایران نیست این قاعده اینو میگه دو افزایششون بدهکار کاهششون بستانکار بدهی و سرمایه افزایششون بستانکار کاهششون بدهکار و نکتهش اینه که هر رویداد مالی حداقل بر دو حساب اثر داره به همین خاطر به حسابداری قدیمان این هم میگفتن حسابداری دو طرفه اسم دیگهش حسابداری دو طرفه هم هست این رو باید توضیح بدیم این باید تفسیر کنیم بازش مانه. هر رویداد مالی حداقل بر دو حساب اثر داره حداقل بر دو حساب اثر داره حسابداری دو همون حسابداریه. حاضر دوره حسابداری دارین؟ قبلا نه بهش میگفتن حسابداریه دو, دو طرفه. دو برای که هر چی دو تا حساب اصلا. خب اول از همه اول از همه رو باید راجبه مفهوم کلمه بدهکار و بستانکار خالی کنین. وگرنه اینو پاتی پاتی می‌کنید اصلا یاد نمی‌گیرین. یعنی اونی که از کودکی تا الان یاد گرفتید بده کار چیه بسنج کار چیه اونو کردن بذار کن اگه میخوای اینو با اون مقایسه کرد راحتی نداره. OK پس الان شما هیچی راجع به بده کار بسنج کار هیچ پیش نداری. نداشته باشیم بیا از نبودش شویی چون رفت نداره خب حالا ما یه قاعده ای داریم میگیم اقا دارایی وقتی زیاد میشن دارایی مثل چی بود؟ اون سمت را دارا دارایی همون مثل نر بود، مثل طلبه بود مثل سهام بود، سفرده بود، زمین، ماشینالا، ساختمون، اینا همه چی بود دارایی دارایی وقتی زیاد میشن حسابشون که میره بالا اصطلاحا میگیم چی بدهکار, بدهکار میشن رابطه به اون کلمه بدهکار نه. که یه نفر باید یکی دیگه پول بده اصلا نداره یعنی داراییمون که زیاد میشن ما اصطلاحا میگیم بدهکار شده حساب دارایی حساب بدهکار شده. آره همون و وقتی داراییمون کم میشن ما اصطلاحا میگیم مثلا پولمون کم بس. میشن موجودی کارمون کم میشه طلبامون کم میشن اصطلاحاً میگیم حساب دارانی چی شده؟ بسطلاح کار شد چلی این سیستم رو اون رفتی به این نداره شاید دو تا کلمه دیگه بود خیلی بهتر بود ولی ما همیشه هم اول بسیم تحکید میکنم اگه کسی بخواد بره تو اون فاز مقایسه کنه به هیچ نتیجه نمیره. مثلا هم یاد نمیگیره قاطی پاتی میشی پس وقتی دارانی همون زیاد میشن ما اسطلاحاً میگیم به دهکار شده حساب دارانی حساب بانکمون به دهکار شده یعنی پول رو تو بانک و وقتی پول از بانکمون میره اسطلاحاً میگیم حساب بانکمون به کار شده یعنی پول از تو بانک رفته در این فایج هست دوتون فایج هست آفری آسف میشینم در این بینیمیسیم داری بروشیم خوب رفت دیگه اونورم هم همین اون وقت ای برعکس هم. این برعکس. برعکس. ای برعکس. برعکس درست این <تصف> <تصف> الان ای ای ای آره تو دبیتل تو کردیت میشه حالا میشه نه نه نه میشه به استامکار قسمتی چه سمت راست سمت بده کار سمت چپ یعنی عکس برعکس دیگه از آره خب من اینو خاصم خیلی خوبه من میشه به جلو داره میری نه شرکتو کنفو برگر منو با تو میدونیم این بس خیلی حساسه یه از من زیادی بگم کم بگم بعد بگم همین قاتی شدن آره یعنی این اصلش اصفر در یا صرف روشه در میدو برای چکره تو اینگریسی تنگیزانه اینوری از این واری. این اصلت بر بر بر میگه توی دارایه ما سمت راست درانه های اونها سمتشت شکل بعد بدهی ها و کپیتال زرگ تزمان خب پس دو تا باجه داریم که ارتباط اون داری که عقب می نداره <تصفح> نه داره. زمانی که دارایی ها افزایش پیدا می کنن مرخوایی <تصفح> زمانی که دارایی ها افزایش پیدا می کنن. مثل بچه نه مثل مطالبات موجودی کالا زمین ساختمان ماشین همه این وقتی افزایش پیدا می کنن کاما بذاریم اسطلاحا که حساب دارایی به دهکار و وقتی کاهش پیدا می شده کارش حالا همین راجع به این یکی بنویسید دور از سر سر. زمانی که بدعی ها و سرمایه افزایش پیدا می کنند اصطلاحا میگوییم گوییم به حساب بدهیها و سرمایه افزایش پیدا می اصطلاحا میگوییم که حساب بدین و سرمایه استامکار کار شده است. یه هست یه رکورد با وقت ایزدی میسته. که که حساب خودت رو سرمایه حساب <تصفح> این بدهی و اینجا ب... اینیه پدریه سرمایه اصلیش میگیم چی بستان, بستان شده اصلان میگیم حساب و نه کار. و وقتی قهوش پیدا میکنن اصلان میگیم چی شده حساب بدهی دیدجو سرمایهمون به دید کار شده. و همین ممکن خیلی قاطی کنن که این بدهی یعنی چی بستان کار شده یا بدهی یعنی چی به کار شده. در صورت این معنی اصلا به دهکار به دهکار ها نیست و همیش افضایشو یک کلمه حساب وقتی روز این جلوش دلست میشه اوکی okay. پس نکته اولی بود به دهکار کاری که از قبل بلد بودیم مفهومی تو زهرتون بود اونو کلن پاکانی. ما اینجا معنی افضایشگاهشو داریم ما به دهکار به دهکار به افزایش کار، افزایش داراییابله کار، کاهشش بستان کار، این دو تا این باریا برعکس. افزایششون بستان کار و کاهششون به کار. این قاعده این داستانی که این بازیه که اینجا در اومده. این شاه کار ذهنیه. یه آقای به اسم پاتچولی 1500 میلادی تو ایتالیا یه کتابی نوشته به اسم حساب و کتاب. اولین بار این را در رو که هنوزم معتوره به همین سادگی هزاران رویداد و معاملن را تبدیل میکنه به چهار صفحه صورت مالی حالا مثال بیزنی چه چجوری این کار میکنه تو نید حساب دو کناله ایشونه در عبز حساب دارید دو تن رو خب؟ بریم تا چونی بیا چونی که این اون تو نکته این سیستم این جمله هست که باز روش ترکید میکنم که هر رویداد مالی حداقل بر دو تا حساب دو یا بیشتر وقتی بخشی حداقل نمیتونه بیشتر باشه. که سه تا حساب باشه یا تا حساب باشه. حداقل روی دو تا حساب. و ما همه تو زندگی هم حساب کتاب میکنیم. میدونیم حقوق کم چقدر هزینه از چقدر پول کم داریم که می ولی ما همیشه حسابداری رو یه طرفه انجام میدیم. یعنی همه رو زیر هم می‌نینیسیم، خزینه رو جمع می‌کنیم، می جمع خزینه. اون طرفش رو کار نداره که دیگه این خزینه ها نقدی بوده، نسیه بوده، وام بوده، چه بوده. این خیلی سیستم تری یعنی ما همه حسابداری تو زندگی شخصیمون داریم ولی حسابداریمون ناقص و یه طرفه است. این سیستم حسابداری حسابداریش دو طرفه است. خب؟ حالا می‌خوام یه سری رویداد مالی مثال بزنیم. زیاد و با این قاعده ها پیدا کنیم که افزایش کاهش به کار به و ثبت کنیم این عاملی که بدهی ها و سرمایه افزایش پیدا میکنن مثلا میگیم که حسابم به بستانکار شده است آره درست میشم؟ یعنی بدهی ها و سرمایه افزایش پیدا میکنن بستانکار میشن م. م. م. مثال بزنیم خوب میشه آره بریم خوب من رویداد مالی مثال میزنم بعد با هم تحقیل میکنی اولین رویداد و معروفترین رویداد مالی هر شرکتی تأسیس شرکت و مثلا مبلغ صد میلیون به عنوان سرمایه وارد به حساب بانکی واریس شده <تصفح> یه شرکتی تأسیس شده اصلا هر شرکتی که تأسیس میشه اولی ثبت حسابداریش همینه سرمایه آقای. سرمایه میارم میریزن توی یه حساب بانکی شرکت شروع میکنه حالا میره باشه چیزهایی میخره و کارش را میفته خوب, خوب درد این سرپیدینه اومده تو حساب بانکی پس پولایی که تو بانک ماه هفتزایش پیدا کرده یعنی سفر بوده اومده بالا بانک جزء کدوم یکی از این سه تا هست؟ بدهی داره. داره. داره. بانک پولات که تو بانکته حساب بانکی جزده چیه؟ دارایی داراییات رفته بالا بدهی پس چی میشه؟ پیدا داره یه طرفش گفتم دو طرف داره هر رویدادی باید شما دو تا حساب براش پیدا کنید که تاثیر می‌پذیره از اون طرف طرفم چی اومده این طرف سرمایه سرمایه سرمایه هم اومده بالا ایجاد شده سرمایه گفتم میره بالا چی میشه استاک سرمایه وقتی میره بالا بستونگ بانک افزایش پیدا کرده جز دارایی هاست افزایش دارایی ها بدهکاره پس بانک هم بدهکار میشه از اون طرف سرمایه شرکت هم ایجاد شده یعنی افزایش پیدا کرده سرمایه افزایشش چی میشه بستن کار میشه اینا هم با مبلغ بدهکار رو بستن ها همیشه با هم باشه برابر این اولی سب تایه شرکت بانک 100 میلیون بدهکار سرمایه صد میلیون بستانکار اصلا اون معنی بدهکار بستانکاری که ما از قبل تو زهنم بود نداره بانک بدهکار یعنی حسابی یعنی پول تو حساب بانکیمون بانک بدهکار معنی شید. پس چیکار کردیم؟ دو تا حساب اول پیدا کردیم چون گفتیم حداقل رو دو حساب اثر داره دو تا حساب رو پیدا کردیم اگه گفتم ماله تو بانکمون، بانک جزءی چیاست؟ داره. داره. داره هاست. هر کدوم از داره یا قیدشونیه. حساب بانکیمون توش پول اومده افسایش پیدا کرده، پس چی میشه؟ دکار. سرمایهمون هم ایجاد شده، یعنی افسایش پیدا کرده. سرمایه افسایشش چیه؟ پس آنها. هر منع رایی قابل چیز بشه؟ بشه اینی که ما حسابمون بدی حساب وقتی کامیش میاد، تقلب دو, <تصفيق> <تصفيق> دو یه رویداد دیگه خرید ساختمان اداری مثلا، به مبلغ پنجاه میلیون به طور نه داره یه نمید بیش که نگه بذاره هم فکر کنیم دیگه پنجان. پنجان. پنجان. هم. هم سرمایه 100 بوده دیگه از که بیشتر تو رو خرید کنیم نه از مظر فیزیکی منظور هم نه <تصحق> <تصحق> <تصحق> خب شما خودت فکر کن ببین رو چه اثر داره؟ ما اون سرمایه‌مون کم میشه. اولی که نشه. با مثلا مو می‌شیم. میشه ساختمون دارایی داراییه. ببین ساختمون خریدم. ساختمون خودش جزو چی وقتی میره بالا ها چی میشن؟ بدهکارش. از اون طرفم از پولام کم شده. دارمین؟ پول دارمون اومده پایین، صافتونون اومده؟ بادراخل است از بانکیمون بانک کم شده بانک جز دارایی هست دارایی وقتی کم میشن بستانکار هست پس یه دونه حساب رو داریم یه دونه حساب بستانکار که هرزان قدرداشت چقدره انجام پنجام تا اون چهار صفحه که گفتید همینجوری نوشته میشه یا حالت خاص دیگه ای داره اون همون شکلیه که جلسه قبل تحییل کردی. مانده هاشون بعد از این پردازشی میاد اونجا یعنی حساب بانکه هیچ پول توش میاد میره میاد میره میاد میره می آخر یه عددی میشه که میاد تو اون تراز میگه بانکم تو این روز انقدر داره. حالا ما همین یه ترازنامه همینجا بکشیم این اولین ترازناممون اینطوریه 100 میلیون پول داریم 100 میلیون هم چی داریم سرمایه داریم بدهیمون سه نه اقیمانی به کرد. این ترازنامه اولی شرکت تو بانک 100 میلیون اومده به عنوان چی سرمایه با جنب دو طرف هم چی برابر حالا ترازمان هم یه تعدیر میکنه این بانکش از میشه پنجاب به جایش یه دونه دیگه هم داره به اسم چی؟ ساختمان پنجاب این طرف ولی سرمایهش چقدر؟ یعنی خب. خب. این مورد دوم عملیاتش فقط رو سمت راسته آفرین. مورد دوم رو دوتا حساب اثر داره که دوتاش جزه داراییان یکی از دارایات رو شده به اسم ساختمان یه دارایی به اسم بانک کم شده خوب رویداد خرید ملزومات اداری به مبلغ پنج میلیون به طور نسیه اولا ملجومات اداری جزه دارایی ملجومات اداری افزایش پیدا کرده جزء دارایی دارایا دارای, آس. دارای آس. هم همیشه چیه؟ بده این ملجومات دارایی همیشه میگیم اون طرف ما پول نگرفتن یا پول پولامون با بالا پول نداری نه ما خریدیم دیگه <تصفيق> شدنی سرپول پول ندادیم پول نداری پول نداری پول نداری پول نداری پول نداری پیدا کرده یعنی یه پول اومده بالا پول او نداری پول نداری پول نداری خب نداری پول نداری پول مثلا پول نداری پرداختنی افزایش پیدا کرده و افزایش بده ها همیشه بستان کاره آه. پس تا اینجا ترازدوه میشه پنجه تا که بچه بود پنجه ها هم بود 5 هم چی اضافه شد؟ نه پنجتا هم به اضافه شد و ستا ست هم سه بود هم دو طرفش با هم برابر این طرفش میشه سد و پنج. این طرفش هم میشه 100. و... اینجا دو طرفش چند بود؟ 100. 100. اینجا هم دو طرفش؟ 100. و این بازی ادامه داره اگه بخوایم بریم جلوتر حالا بیداری ببینیم همین مثالو تا آخر بریم کلن بدونی این حسابدار چکار چی چیکار میکنه ار نیست شما حسابدار بشین دوره ام بی دوره حسابداری دوره های جداست تو دانشگاه چهار سال که درس داره بیرون هم دوره های آموزیشی هست که مثلا یه ساله، دو ساله <تصفيق> خوب چند تا رویداد دیگه هم مثال بزنیم بعد اینو ببریم تا آخر یه ترازنامه سود و تهیه کنیم که گفته باشیم حسابداری چه جوریه میگم من دوست دارم که مالی بگم مدیریتی بگم خب چهار پرداخت پرداخت بدهی بابت خرید مزومان چک درآمد تناط کرد آ چه حساب اثر داره بدهی کارش این بدهی 5 میلیونی تو دادی دیگه بدهی کم میشه بدهی وقتی, میشه. میشه؟ بدهی وقتی کم میشه چی میشه؟ حساب‌های بدهی وقتی کم میشه چی میشه؟ پستون کار کم شده. میشه. کم میشه از اون پولم هم دردی دیگه. پس بانکتم خلی. کم شده کار تا هش ها هم از پولات کم شد، هم از بدهیات کم شد این هم می این هم پس دوباره تراز به این شکل در میاد. آد پنجا نه باکی بایه... اون کم شد پنج. پنجا... پنج این شد صفت، این شد صد چلو... صد، نه با نه، از بله کم شد، از سرمان شد این پنجه از پنجه شد صفت به دیگه ما؟ از بایه بایه بایه بایه ده، ده بایه. اصلا باعثا سر سر با سرمویه کار نداریم سرمویه فقط اول که می آ. دیگه دارای و که دارای من داره هم تبدیل میشه چون سرمایه شما به شکل پول میاد این پوله میره حالا کاراشو انجام میده عدد سرمایه شما که اوورده تو شرکت این صده هست درست یعنی معاملاتت با سرمایه نیست با اون پولی که از این سرمایه اومده و این حالا به چیزای دیگه تبدیل شده الان شما بدهی تو از پولای بانکیت میدید بس اون, اون آورد شما سرمایه تومانه تو این بیزینس. را اینکه دوباره پول بیارید. ما ای اینکه کم نمیشه ازش این چیزی که اولی همونه. آره مگر اینکه zarar کنه. اوکی. سرمایه تو کم. پس شما الان می‌بینید دو طرفش چقدره؟ 100. خب حالا یه این رو اینجا اضافه کنیم که دو طرفه 100 میلیون. 4555 هم, هم داریم حالا صفت در و هزینه چجوری ہے؟ درآمد، خزینه، درآمد۔ افسو یوسف هزینه کام کرے، خزینه افسویش بھر ندارن اینا۔ یعنی یا ما اسے میفروشیم یا نمیفروشیم فروش منفی نداره۔ این جزء اون قاعده، آها، ادامه اون قاعده به بیکار خب میشه چه خب، درآمد میشه چرا اینطوریه؟ چرا اینطوریه؟ حواله چی دلیل داره. دلیلش اینه که تو ترازو ما درآمدی بدهی، سهمی داری. اوه. تو صورت سودو زنا. میخاسته. درآمد حزینه دور در میتونه استفاده شما یه سرمایه آوردی اینو راه انداختین. آخر یه سال ممکنه سود کنی. سود میاد به سرمایه شما اضافه میشه یا اگر زیان کنی زیان میاد سرمایه شما رو کم, کم میکنه باید. باید. سود بکنیم سرمایه هم میره بله مسئله شما صد ملیون امرده بودی توی این بیزنس. درست. یه سالم کار کردی ده ملیون سود کردی این ده دوره در حقیقت میاد سرمایه شما رو اثلت میکنه زد در یا اگه ضرر کنی سرمایه‌تون رو کم میکنه. حالا درآمد چون موجب افزایش سرمایه میشه سرمایه هم افزایشش به کاره. پس درآمد افزایشش به کاره کاره. اینا کل دنیا درآمد موجب سود و افزایش سرمایه میشه, میشه. چون سرمایه هم تو بالده قبلی داشتیم، افزایشش پستانکاره، پس درآمد هم مثل همون افزایشش پستانکاره. از طرف دیگه هزینه موجب کاهش سود و کاهش سرمایه, سرمایه میشه. میشه. کاهش سرمایه هم چون بدهکاره، پس هزینه هم همیشه بدهکاره. بده. اینا هم به اون قاعد قبلی اضافه کنی تام شد چیزی یه این بیشتر باشه بس بسید باشید باشید اکتا این باز بشه اون بده ببین اینا دیگه که خودت باید تو خود بزرم اون که باقیه هم نیچ کنید حساب سازی کن. نه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 خب تو چه حساب هایی حسر داره این حزینه است حزینه حقوق حزینه حقوق ما داشتیم این همیشه چیه ده ده از اون طرف هم از بانکمون بانکم. کم شده بانک جزنگار نیاز کاهشش میشه چی بستان کار یه میلیون باید تو چیزمون تنجری میشه سهبازم تو پرازمون بانکت 45 بود پرازم میشه 4 اون پنجه رم داری؟ اون پنجه رم داری؟ بدهی صفره؟ کجونه؟ اون میشه همه یه توم. اون یه کجونه؟ اون یه تومنم؟ تو صورت زیان میگه این موتورش دی روشن میشه، ولی روشن که بشه این یه تومنه، ما تا اینجا چقدر ضرر داریم یه الان نگاه کنید، این طرفش میشه چند؟ 99؟ این طرفش هم صده، این یه تومنه فعلا دیگه، حالا و تا آخر سال درودان میاد شرکت ها اول حزینه می‌کنن تا درمت به درامت درسیده تو این لحظه این فعلا به درامت نرسیده مثلا نمی... پرداخت حقوق کارمندانمون مثلا زیانه به حزینه هست حزینه حزینه زالی خوب چه صورت سود زیان میشه؟ حزینه اون باید چیز می‌شه، ما تواجه شده باید می‌شه حسای پرداختنی بگید؟ نردی بود بیگه بود شو داری؟ بود بود بگه؟ اگه حقوقشون رو کار کنن ندی میشه خزینه حقوق به کار حساب پرداختنی اگه ندی حساب کارجوس بده کار کارمند هر وقت بدی کم میشه تمام این اتفاقایی که تو دنیا واقعی میفته این قاعده همه رو پوشش میده یه مدلیه که هر معامله رو شما بگی من درجا براتون ثبتش میزنم من نهایی این قاعده هر معاملی، هر مدلی که باشه، میتونه پوشش بده به شما میگن حساب داره ما این چه زیده؟ یه خب شیش خرید موجودی کالا به مبلغ 20 ملیون چرا همی 20 آره خریده ما با دیگه درمان میشه موجودی کارها میشه اگه شایی و فروشی باشه میشه موجوده که حولیدی باشه که آقا در بلیه آنها 20 ملیون نفضی خب میزنی موجودی کارها افزایش داره به دکار جزو دارایی ها بست درستان که کاهش داره جزو دارایی ها کاهش همه دوتان روزه تو, ترازه... تو ترازه این چه بیست بیس بیس فقط به بیشترم شده میشه بعد 50 تا رو داری 5 تا رو داری بیستان یه بیستان بیستان داری باید. از این رفت بمی کی به هم تبدیل شده یه دارایی اضافه شد یه دارایی دارایی این میشه شرکتی شرکت که حرکت خیلن، داره چیزی میکنه تا تا در آمد یه از فروش مثال بزنید. هفت فروش موجودی سالا به مبلغ 25 میلیون نسیه. امروه که خریده بود بیستمون فروش داده بود حالا فروخته 25 و پنج ولی این فروش هم نگرفتیم که شده خب ما اینجا فروش داریم فروش یا درامند اون چه بگیم فروش چه بگیم درامند افضایشش چیه؟ بیست و پاییم دریافتنی نسیه باقتیش پول نگرفت. میشه چی؟ حساب, حساب های دریافتنی حساب های دریافتنی افضایشش چیه؟ میره این حساب های دریافتنی هم جزه بانک میشه دیگه ترمن ها. وقتی پولشو بگیریم میره تو بانک طلبه ترمنگی رو تیگیره حساب دفتریه چون باقا نشون میری که همقدر از کی طلبه بیشه سفت بودم بله این یه سفتشه یه سفت دیگه هم داره موجودی کالای شما نرفته بود بالا 20 میلیون درست نه بکنم درست. بکنم حالا اومده پایین چه کالایی؟ موجودی اومده پایین و نه به تمام شده تایی به های تمام شده کالای فروش رفتم یه حساب دیگه است اون روزه افزایش میده کرده میشه ب کار ثبت فروش روی چهار تا حساب اثر داره گفته بگه حداقل اقل دوتا بعضی وقتها هست که حساباش. هاش باید حواستمون باشه که این اولیه مبلغ این دوتا بیس و این دومیه مبلغش بیسته. و اختلاف و اختلاف این فروشه و این برهای تمام شدهه در حقیقت میشه چی؟ سود ما <تصفح> یعنی تو زمان فروش ما یه سفت خود فروش داریم به قیمت فروش یکیم این سفت داریم که اون کالایی که اومده بود رفته به قیمت چی؟ تمام شده و اختلاف این دوتا این دوتا میشه چی در نقیقه؟ سوده سوده ما حالا بیانیم ترازوان رو تحقیق کنیم خب رو پوله همون که اصلا نداشم اون 24 هست اون 50 تا ساختمونی هم که داشتیم هست اون 5 تا ملزومات اداری هم که داشتیم هست این 20 تا. صفت میشه. میشه موجودی کالباهی طب ولی به جاش طلبامون و میاد بالا طلبامون بیس میاد بالا این طرفشم که بود چقدر؟ صد این از فرازنامه میشه که جمع بزنیم این ور صده این ور پنجا هفت دو پنج ۹۹ ۱۵ ۱۵ ۱۵ خب، حالا تو صورت صور دوزیانش یه فروش داریم، چقدره؟ 25 این حدادش 25 ۲ درسته؟ یه دونه به های تمام شده داریم ۲۰ ۲ ۲ یه دونه هم که هزینه حقوم داشتیم ۲ این اختلافش میشه ۲۴ و چهار چهار چهار تا چی داری؟ این چهاره هم بیاد به این سرمیه هم اضافه شه دو طرفش میخونه اصول تا فروشش به صورت نسلیه در آمده چی بردی؟ خاطر که فروختی پولی مثلا چکت؟ آها همی بیس و شیش تا پول بگیری بله اون یه افزایش داره یه میلیون بزرک کار میشه؟ درامد نو داره دیگه ای داری به اسم درآمد بحره اونم افزایش پیدا میکنه و ایمون چی میشه؟ بستان کار میشه چون درامد ها افضایش شما بستان توی یه ملیون میاد اینجا درامده میاد اینجا آها هم یه کار حساب از من خیلی انگار مودلت زیاد داره چون این هفتا نمیگه مدل مودله؟ خیلی مختلفی میگم مودلت که شما به اشتراسیم دیگه سفتا همونه دیگه یعنی صد دفعه دیگه شرکت رو بیاد هم شما سبت یه دفعه، دو دفعه، سه دفعه کار کنید، یه تکرار میشه این کار رو حساب داری؟ یه سال، دو سال، اولش حساب داره رو هی یاد میگیرن بعد دیگه تکرار میکنه من اینکه ش... مدل شرکتشون رو عوض کنم شرکت های خدماتی داریم شرکت های بازرگانی داریم شرکت های تولیدی داریم، این از همه راحت تر کار حساب داریشون خدماتی هست یعنی اصلا توش کالایی نمیاد بره مثل اینجا این محسس آموزشیه ساده است درمود و ساده بازنگانی یعنی یه جنسی رو میخره و میفروشه خب این انبار میخواد حساب موجودی کالا میخواد کنترل میخواد حسابداریش یه خورده بزرگتره که خرید برگشت فروش آفرید بعد تولیدی‌ها دیگه از همه هم در عمل دنگفنگیشون بیشتره هم حسابداریشون چون خط تولید داره کارگونه داره استقرار داره انرژی داره مواد میاد توی پروزه ای میچرخه به محصول تبدیل میشه حسابداریش هم از همه داستان تره کوچیدوتره به اینکه کارش کار بزرگتره مگه حساب داره مثلا اول بیاد توی همچیزهایی کار کنه بعد بیاد توی این وقتی اونی که توی تولیدی وارده دیگه این دوتا براماش ساده است خب پس قاعده چی بود؟ از حفظ بگید شما که بلدی نه، اونها که تازیاری هسته کدو قاعده هست؟ قاعده هست، از که دیگه؟ به کار رو استان کار وقتی میگی کدوم قاعده، انگار که یه تنجر از باید او کدوم قاعده به دیکار به سانتا بود به کار این ما که مثلا هفظهالیش پیدا کن و میشیم بدهکار ما حساب دارائیمونه حساب دارائیمونه دقیقا کاهشش کاهشش میشیم بست کار. خب بدخی و سرمایه بده هم که افزایش پیدا کنه میشیم و مشیم و بست الکار بدهکار اونم بایست و بست الکار مثل خودشم خودشون مثل خودشون درست رو و سرمایه هفظهاششون بدهی اگه هفظهاش پیدا بکنه میشه تو حساب ما میشه بستانکار برعکسی اگر هم دیگه دارایی افزایشش بده, بده کاهش بستان بستان کار و بده کار بدهی و سرمایی افزایشش بده کار کاهشش بده کار حالا کنون قاعده بود میدیدی حالا حالا میتونی حد اقلی شست رو بگیری چهار دو کلم هم میدونی حساب داره فکر کنه که کسی بلدیم آره میشین اصلا سبت روزانی فروشمون سبت فروشمون از فردای میره های رو میکشه ولی بمازالش که فردش خیلی سال سال زیادی هم یعنی بس نکن دیگه به چیزی ببیره و گلده اینه سختان ببیره و تو موکونه داری بلتر خراکاری میشه حالا تو آکم آکم چیزن روی؟ آکم چی؟ کلیدی به در بکن از اون نکتا آره. در خودش نقطه است دیگه. پس میتونین الان یه جدول خلاصه تهیه کنیم هروری چه سرمایه درآمد هزینه افزایش کاهش ها دارایی یا افزایشش میشه به کاهشش میشه بستانکار کار. این دوتا افزایشش بستانکار کاهششون بدهکار به د درآمد افزایشش بهستان کاهش نداره هزینه افزایشش بدهکار کاهش شاهش نداره این خلاصه این قایده بود که تاعلان گفتیم. نه اصلا نداره نه اصلا نداره این شما آقا یا فروش داره یا نداره دا دیگه نه وقتی میز توشی بستان کنیم تا این نداره که فروش بردیم یکی برگت ساری اصلا اصلا تراز خب حالا این پردازشی که ما اینجا انجام میدیم که تبقیه این قاعده هست خودشان یه سلسل مراتبی داره اینکه تشخیص دادیم کدوم حساب افسادگی اشگاهیه این مهمترین قسمت کاره. <تصفيق> که یه اتفاقی یه رویداد مالی افتاده و ما تشخیص دادیم که چه حسابی افسادگی چه حسابی کار، چه حسابی بسازه. <تصفيق> این مهمترین قسمته که یه حسابدار با, با تمرین توش قوی بشه و درست انجام <تصفيق> حالا این پردازشی خودش تو این پروسه انجام میشه. اول میان یه سند حسابداری میزنن. بعد وارد دفتر روزنامه میشه بعد وارد دفتر کل میشه <تصفح> بعد تراز آزمایشی تریمه میشه آن میتونه باز اینجا چیز اضافه کنیم دیگه این کلاس نمیتونه و در نمالت <تصفح> چی میاد بیرون؟ صورت های مالی صورت های مالی امومد دو صورت داره مالی دارایی همه وقتی مالیاتی خیلی سنگین شده امسانا فروش نفت نیست یعنی این ها که خون و با شرکت ها یعنی اصلا من میدونم اون دارشتی ها هستند که ممیزند خیلی ها شما بود گفتن برید و بگیرید اصلا همیشه مثلا سال نوید و کمی آمدن نوید میکردن الان می‌کنن سال ۹۲ رو دارن رسیدگی میکنن خاطره اینکه در آمدان نفتی کلا به رفته بعدش هم مثلا یه که اصلا یه تردید دارن اینکه نفت رو از بوجه حرص کنن آلوش. یعنی ها هرچی نفت رو روخ دیم توی یه صندوقی واسه یه کارای خاصی چی کسی به یه همون دست بذارن؟ در آمدان می‌رد ولی فشار زیادی میاد وقتی که شرکت ها تو روکودن بشگه نردنگی هم دارن و یه نکته که هست مالیات رو دوستان از سود می گیرن نه از پول. مثلا ما یه شرکت پیمانکاری هست از ما. مثلا اینا 20 میلیارد فروش داشتن فروش که 8 میلیاردش سوده شرکت آس آسفال، کارکن آسفالت. چه همین که با شهرداری آب و فاضلاب عرض که اونها را میکنن کردن شعبان اسلی شعبو تو یه سال 20 میلیارد فروش داشتن که 8 میلیاردش سوده خب این 8 میلیارد سود میشه 2 میلیارد مالیات 22 درصد مالیات بحثی نداره ولی این 20 میلیارد طلب اینا رو شهرداری ممکنه تا 3 سال دیگه هم نده یعنی و نداده یعنی از این را پولی ساره ساره نگرفتن ولی مالیاتشون باید یعنی مالیات اداره دارایی کار نداره که تو فروشات و پولشو گرفتی یا نگرفتی یا بعدن میگیری یا جلوی میگیری یا دیر میگیری واسه همین این استراتژی در کل درسته که ما اصلا پول نفت رو به کارمندای های دولت بدیم و بخاریم تو توی کارهای سرمی بزید بله یک موجه مالی های درست نیز. مثلا انگلستان با پول مالیات های میگه چقدر پول گرفتی بابت فروشه؟ این صودت چقدر بابتش پول گرفتی؟ شفافزازی هم دارم اونجا یا مثل ما زیرولو میکشم نه میدونم شفافو دیگه اینا شفاف نیست خب مثلا میگم چه اماش شو شرفاق ببکنه خیلی دیگه که چه اما این سنگینه فهی نرواشه که اشان ها جرایی سنگینه فهی که انگلستان نمیشه اونجا خود اظهاریه منطور از اون موقعی که الان شما تو شیر میفروشید عرض شهرسوده میگیری یا نمیگید؟ نه بلیه کم کم باید بید. کم کم مالیاتی داره خیلی دیگه هرزه میشه همه دارم میگیرم دیگه چجوری میشه؟ برای شما یه نرم افزاری میان تو مغازه دست میکنن رو کامپیوتره که این وصل به اداره دارایه هرکی از تو خرید میکنه مثلا ده هزار تومن چجوری میخره؟ هیستد شما باید هرزش افضوده ازش باید بگیرید دیگه ذاتمون و اینا رو بریزی هر ماه به حساب دارایی ما دارن سه ماهه بودی هر ماهانه هم می‌کنه حالا سه این نه ان تو بده شهر میشه بعد از بعد؟ داره به این سمت میره حالا خیلی از کشاورها همین بس استفاده هم چیزوری آیا 18 درصدو میگیرن؟ نمی نویسه. مثل طلا فروشو. به شما مثلا یه طلاقه 5 میلیون مینیویسه 5 میلیون مثلا ارزش طلا 400 هزار چی؟ 8 دسمالتی ارزش شده. یه باعث ولی اونها نمیرم بدن و اون دارایی هم نمیفهمه که این گرفتن. تا وقتی میاد تو اسناف و اون نرنفذ داره رو با سیستم های دوربین و کنترالی اینا رو کنن وگر که شما با اون خریدارو توانی کنیم بگی آقا هرزش هستوزا میخوای بده یا نمیخوای بده یا بده اصلا من تو این سیستم سرد نمیدونم نکنم ولی ممکنه اون خریدار معبوله و ممیر <تصفيق> <تصفيق> مهمید. خیلی پیشی داره میشه دیگه اصلا و معمولاً وقتی سختگیری این چیز زیاد میشه فساد اون بیشتر میشه زیاد میشه مثلا موقع بود یه دفعه جریمه ها رو کرده صده زار تومن، دیویسه زار تومن دوباره با تورم صده زار تومنه گرفته شده ولی سه، چهار سال پیش، و هم اول بری پارکینگ. زاتون جریمت اسمی بزن به هر هم تام بگیر اینا بگیرینم بگیرین نردی حسابت آره تو گفت چه هم بعد بریم کارم میافتم مثلا تو جاددم هستی مثلا زن بچت هم هستن ایچ ایچ الان در حقیقت همین داره میشه وقتی سختی مالیاتی میشه اون فسادی که یه بخشی از ممیزو دارن یه نونی برای بخش که چرا اینکه میان که سه تا که سر بعد بهش بزنی سررسی؟ سرس خانی نه نه، سندسیکلی نه, سیده سیده. نه. سر... سر سر پر. <تصفح> <تصفح> یه که مالیات رو از هیسدد میلیون کرد چارسد 400... به شرکت ها اندازه فهم میکنیم، هده فهم مالیات یه شرکتی بود که از چارسد خودش گرفت <تصفح> وسط در یه قانونی هست میگه اگر شما اگر کسی یک اختلاس هم اینجوری رو لابده مبلغ پولی که به صندوق دولت برمی گرده پنجاب درصدش متعلق به کسیه که اسناد رو آمارش داده اینجوری جولای فساسه سیاسته انگلیسی آدم بروجی بازه آدم یعنی اگه بازه سه آیا داره ایرونی که رشته می گیره ایسا قالو رشته نگرفت. یه ولی رشته بود آدم. عادیی. ما اصلا خدا که تیزن. نه من واقعا یعنی هم رو و من اشتباه کردم. دادن. چون که چون این دوتا از نظر دینی ارتقادی هیچ فرقی با هم نداره ولی یه جایی انقدر گیر بودم و دیدم که اگه ندم خیلی اوزان فراب میشه دادم و الان توجهش نمی که درست بود اشتباه بود و سعی میکنم مثلا به پلیس میام و هر چقدر هست بنویز این خیلی بهتره این با امی... ساتن... من ولی خیلی این کار سختیه دیگه، من اعتراف کنم کنم من رشبه دادم طرف مهمور دولگیری از رشبه گیری بود اولین درشبه گیری بود شهاز داشت کنم درستخند در توی زندگی <فتصفيق> بود چه کسی <تصفيق> هم که داریم خودش کردیم کاری کرد. آخر من آسفال زدم یک شبم باز داشتم ریکردم راست خودم بند دادم که من اصلا چیز خوبی الان اکثرا مثلا گازیه میاد نه وقتی که دیگه میخواد بره تو پارکینگ مثلا سال دیگه زدم یک جاده هم هستی نمیدونم نمیشه که؟ الان یارو مثلا میشه خیلی سخت میشه دیگه می خود تنها باشیم می من یه خب این برنامه رو که خب رواج این کارو ولی اشتباه دیگه من رواج خیلی منفیه بچه‌امو نمیخوام بذارم انجام بدم اصلا من در مواسم ما یا همینجوری بعدی اینو یه چیزی میگیره ولی سر من من نمیدم اصلا من و یه دونه شیرینی دو تا شیرینی سعی میکنم توی یه جبه هم نمیخوام بشوندم چرا جراز... چون اینا عادت میشه خوب نیست، آب یه همونجور، این یکی همینجور آقه گازتو قط کنه چی؟ خوب، آلا من سعی میکنم تا بیشتر چیز بخونم آقه باید، ناری بکنم بسید، دون اینجوری یه راستا یک خوب، ناری بکنم، اینجوری درش میکنم بره واقعا خیلی درست، یعنی واقعا وقتی یه رشویری میدم خیلی بخش دوست ندارم این که بکنم یه از این کارام کنم. مغیم کمی هم مکبرانیشیم که نه یه میکه این هم کاره بعد چه اون همچنین. از اونا تعمیر میشه. این تعمیر باشه. خونه اونها هم دیگه سرمشبی میگیرن. من از اون دنباله این کار. افزاری مثل اون هم یا می موهیه. زایی خوب پول بگیرن تعمیر باشن هر کاری هم بکنید دنبال درآمد بیشتر نیست. نه به نظر من جنی است. اینکه عادت بکنه به جنی. نه نسلش و علاسه. خیلقا بو بایش هم زیاد کاری بازم این کار داره بایشون رو درمان نفتی باید بدم بهشون رو ست مشکلیه که تو همه جا هست داره بله مثلا ما مثال پولیس رو نزنید ها. قاضی ها خزشگاه ما تو همکارمون تو دانشگاه داری باید کنم چون میدیره؟ دیدیست همان، سی ست همان، چار من. من تو قیل دانشوار که من وقتی بیافتم؟ فرمه دیگه دو شعریه بدم پنی بیام و دوگه کی باشه؟ اینا همه در اینا چیکار کار حالا هر کنونشو یه ماشین بیره در انگیزتار رو میان؟ شک برنگیزه سیمیزی هاست خب باشه. نکست. اینو انگار که